گروه سرود استان ابن ثابت از مرکز تربیتی آموزشی مکی تقدیم میدارد یا رب بکنم روی به صحرای محمد تا سرمه زنم خاکه پای محمد هر روز و شب و نیم شب و وقت سحرگاه هر لحظه بسر میزنه سودای محمد یا رب کنم روی به سهره محمد تا سرم زنم خاک ره پای محمد هر روز و شب و نیم شب و وقت سهرگاه هر لحظه به سر میزن سودای محمد هر لحظه به سر میزن سودای محمد یا رب کنم روی به هر روز و شب و نیمه شب و وقت سهر کار لحظه به میزن محمد لحظه میزن محمد دنیا, دنیا پره ظلمت و تاریکی و تاریکی تاریک تاریک تابان شده از آن روخ زیبای محمد, محمد یا رفض کجا کیب بروم سوی مدین تابو سے جنم گنبد خضرا محمد تابو سے گم گنبد خضرا محمد یالم رب نگنم روہی بے سحرائے محمد تا سور میں جنم پای رہے پائے محمد الروح شبو میں شب و وقت بیدن سودای محمد هر لحظه بیدن سودای محمد یا رب امید تو به توفیق نشستم هر لحظه کنم از تو تمنای محمد این جان من و روح من و جسم وجودم گردد به فدای قدرانای محمد گردد به فدای قدرانای محمد یا رب تو روی نوری سهرای محمد تا سرم زنم خاک رهه پای محمد هر روز و شب و شب و وقت سهرگاه هر لحظه به سر میزن سودای محمد هر لحظه به سر میزن سودای, می سودای محمد حیران شده خرشید سماز محمد پرووان دل گشته چ دور شمش خورآ آکنل شد از نور تجلی محمد آکنل شد از نور تجل محمد یا گلوی به صحرا محمد تا سر می زنم پاگرره پای محمد بو نیم شب و وقت سحر دا ار لحظه به سر می زند محمد ار لحظه به سر می زند محمد یا <تصفح> <تصفح> <تصفح> رب کو روی به صحرا محمد تاثیر می زنم کا کے پای محمد هر روز و شب و نیمه شب و وقت سحر گا هر لحظه به شرمی زنه محمد هر لحظه به شرمی زنه صد دائم محمد بکیر